بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام على أشهر الأنبياء وسيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين أما بعد يقول المؤلف رحمه الله اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم, تعلم هذه الثلاث مسائل والعمل بهن الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار والدليل قوله تعالى إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا الثالثة أن من أطاع رسول ووحد الله لا يجوز له موالات من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريبا والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشراتهم أولئك كسب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا, ألا إن حزب الله هم المفلحون قسمت قبلك ما توزيع شددين بحث إن بودك ما بيد بدون خدما خالصا ورازقة لا مستحق عبوديته دومين دومين قسمتك ما داشتين دروس بحث شددين بحث اینکه خداوند دوست ندارد که ما مشرک بشیم، کافر بشیم، بحث درایت شرکت، بحث دوری از شرک، بحث اینکه خداوند دوستش ندارد، نه مشرک رو دوست داره و نه هم شرک رو دوست داره. الان امروز ادامه بحث دیروزه که ما دیروز بحث مفصلی اینو کردیم این که چرا خداوند شرک رو دوست نداره؟ مفصل بحث بحث مرده رو کردیم که نمیشنبیه نمیبینه و خود به خود خاصن از مرده مشارکت اون مرده هست با خداوند در صفت شنیدن در صفت دیدن در صفت رح و لود و دیگر صفات خداوند ما از این جهت گفتیم خداوند دوست نداره خداوند یک تا دوست نداره کسی برای شریکی قرار بده انا اغن شراکه انا یعنی ترین اشخاص هستم از شکر رسول خل... رش... رش... خودمان خل... رش... خل... رش... می بید در حدیث قدسی هموند که رسول الله صلی اللہ علیه وسلم نعفی میکنه سوامی مطلبی که الان داریم که ما باید بدونیم در ادامه بحث دیروز بحث دیروز گفتیم شرک الان اهل شرک اونهایی که مشرکن اونهایی که کافرن ان من اطاع رسوله و وحد الله لا يجوز له موالات من حاد دالله و رسوله اونهایی که دشمن الله و رسولش هستن درست نیست جایز نیست که یک شخص مؤمن اون اشخاص را دوست داشته باشه اونهایی که دشمنی دارن با مسلمین بر یک شخص مسلمان درست نیست که اون شخص را دوست داشته باشه انا من اطاعم رسول الله اون کسی که رسول الله صلی اللہ و سلم اطاعت کرد یعنی اسلام را پذیرفت قرآن و سنت را پذیرفت و یک تا, تا فرست شد و وحه لا یجوز له موالات من حد الله و حق نداره اجازه نداره که اونهایی که دشمنم با الله و رسولش اونها رو دوست داشته باشه اونها موالات داشته باشه موالات بحث دوست داشتن بحث دوست داشتن و بحث موضت بحث انس گرفتن خوب گرفتن با مشرکه ولو کن اقرب قریب هرچند که اون شخص میخواد نزدیک ترین شخص باشه همونطور که آیه به آیه, سد... آیه سد... استناد میکنه ولو کانو آباهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیراتهم هرچند که میخواد خاندانش باشه، پدرش باشه، برادرش باشه، ترزندش باشه با این قضیه رو ما قشنگ و واضح در غزوات رسول الله صلی الله علیه و سلم دیدیم خود رسول الله صلی الله علیه و سلم با خاندان خودش، با قریش جنگید. جنگ احود جنگ بعد، جنگید حالا چی میخواد اموش باشه چی میخواد کسان دیگه از اقوام و خاندانش باشن از صحابه بودن که شمش... با شمشی گردن پدرشون زدن و همچنین برعک بحث حب فلان و بغض فلان دوست داشتن برای خدا و بغض داشتن به خاطر خدا ما قشنگ و واضح در زندگی صحابه ما میبینیم حسن وقتی که عبدالله ابن عبدالله ابن ابی ابن سلود میاد نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم میگید یه رسول اجازه بده گردن پدر اون را دلیل بر چی میده؟ بحث بغض فلا بغض اون مشکل و به خاطر خدا داره اینچینین تربیت شده بودن و اینچینین این آیات را فهمیدن الان بحث ولا برا میشه الان اینجا ما بحث براعت از مشرکین داریم بغض مشرکین رو داریم چون ما ولا داریم دوست داشتنه زدش برادر داشتیم براد و بغض ما این دو مطلب داریم این دو مطلب رو رسول الله صلی الله علیه و سلام در یک حدیث قرار ثلاثه میکنن می‌فرماین رسول الله علیه الصلاه و السلام در حدیث صحیح اوثق عرى الايمان الحب في الله والبغض في الله این در 40 قندی اوثق عرى ایمان، انی قبی قسمت ایمان قبی چیزی که ایمان رو محکم میکنه حب في الله و بغض فلله الله یعنی دوست داشتن به خاطر خدا اگر ما از طبیعت خودمون کوتاه بیام کنار بیام ها با هم متفاوته ما با مسلمین خوب بگیریم اونها را دوست داشته باشیم به خاطر الله و به خاطر که اونها را دوست داریم اونها را نجات بدیم از گناه نصیحتشون بکنیم چون لاز چون بحث ادعا نیست که چون ادعا را خدا با نمیشه مقرون به عمل میکنه قل این کنتم تحبون الله فتبعونی اگر محبت الله را داری فست از من بکنی لازمیه ادعا عمله اگر اون شخص مؤمن را دوست داری حبه الله باید او را نجات بدی چون دین نصیحته باید نجاتش بدی اگر گناهی انجام داد دستش بیگیری. اگر نماز نخون دستش بیگیری. این کار از اشتباه معروف معروفه نهیز منکر این حبه فاللهه و بغض الله اگر کار اشتباهی انجام داد بهش بگی؟ بي. امر معروف نهی از منکر خیلی مهمه فکر نکنید که این قضیه حب الله و بغض الله فقط در بحث شرک و مشرکینه خیر فكرات شرک و مشرکینه روزی شخصی میاد نزد عبدالله بن عمر میگه اینی احبك لله من بخاطر الله در و تعالی عبدالله بن عمر میگه الله اینی لا ابغضك في الله حسنه من بغض في الله داره مسلمانی میاد نزد عبدالله بن عمر عبدالله الله بن عمری چنین حرفی باش می‌ذارن میگه من بغض دارم چرا خود اون شخص میپرسه میگه چرا بغض من داری قال لانک تلحن في الاذان وتاخذ عليه اجرا شو اللحن يكون یعنی با مد طولانی و نغته خاص یعنی مثلا با مد زیادی طولانی و با تقریبا بالا میگن الان منظور این که شما این اون شخص وقتی میگه من بغض دارم بغضش به خاطر چی داره به خاطر اینکه اذانش را طوری انجام میده که در زمان رسول الله صلی الله علیه و آله بلال انجام نمیداد و دیگه صحابه انجام نمیدادن مدش رو خیلی تونانی میگه لحنه در اذان داشته و براش پول میگرفته برای اذان دادن پول میگرفته حالا بحث این که آیا پول گرفتن جایز برای اذان و... یا نیست اصلا مسئله دیگه هست ولی بحث اینجا عبدالله بن عمر این منکری که از این شخص میبینه بحث خود اذانه اینجا میاد به خاطر این, این معصیتی که از دیدگاه عبدالله بن عمر معصیت گناهه میاد به خاطر اون میگه بهش من به خاطر این قضیه بغض دارم خیلی مهمه بغض فلاح ما در یک شخص گناهکار را دیدیم یک شخصی که ازش گناهی سر میزنه بغضش رو داشته باشید به اندازه گناهش نه به ذاتش مثلا بفرض یک شخصی مشروع میخوره <تصفح> نه اینکه دیگه من حس اربته باش بکنم و دیگه سلام علیکی باش نکنم جواب سلامش رام خیر یا کوچه را برش تنگ بکنم یا باش تعامل نداشته باشم خیر من به اندازه گناهش بغضش دارم و به اندازه‌ای که ایمان داره دوستش دارم و وظیفه خودم میدونم که نصفش بکنم امر به معروفش بکنم و نهی از منکرش بکنم این حبه الله و بغضت الله اگر شما شخصی در قلبتون بغضش اومد همونطور که بغض کافر و مشرک رو دارید بدونید که در ایمان شما مشکل هست ایمان شما قوی نشده چون حب الله و بغض الله ایمان رو قوی میکنه به طوری که از مشرک ما براءت بجویید و از شخص گناهکار براءت نسب اندازه گناهش نه به ذاتش در خیلی ها این قضیه رو دقت نمیکنن درش مثلا این تحذیرات میات خوشدارها میات مثلا بفرض یک شخصی در یک جماعتی وارد میشه یک گروهی یک تشکیلی وارد میشه میگه خلاص دیگه با اون گروه دیگه سلام علیک نداشته باش خلاص دیگه با اونها نشید دیگه قطع رابطه بکن مثلا بعضی از صوفیان هستن مثلا میگن نگاه کنید دیگه اگر جایی رفتی کسی بهتون گفت حدیث اومده که تمام درست نیست فلان درست نیست یا توشید اسم از توشید مو این رو تو گوشات بذار دیگه نش نビア از دوستان من رفتی با تا تو یک مسیج راستیم دیدم که طب توی مسجد بعد دیگه من بیرون اومدم بعد یکی دستم گرفت تو خوشش میری بیرون بعد دیگه گفتم گفتم که اینجا قبره که درست نیست کی گفت کی گفته درست نیست میگه میگه بحث گردم باهاش بعد گفتم که شما برید کتاب توشید فلانی رو بکنید همونجا که اسمش اسم مؤلف را آوردم میگه اونجا رنگ از روش به قول خودمون خودمون بندریا پریس چهرش عوض شد خشکی شد که چرا اسم اینها را میاری اینو ما بارد بدونیم حبمون و بغضمون نسبی هست ما به اندازه ایمان یک مؤمن دوستش داریم و به اندازه گناهش بغضش داریم نه اینکه به ذاتش بغضش داریم حالا خیلی از مسائل هست در اینجا نهفته است بحث بغض بحث بغض مشرک این بغض مشرک چیه؟ لازمه چیه؟ و بحث این ولایتی که اینجا بحثش اومده بحث ولا ولا چی اصلا موالات چیه و چی چیزی این موالات را از بین میبره نگاه کنید در قرآن کلمه موالات و ولا به کار برده شده که معانیش نزدیکی به هم است ولا و موالا یه نوع دوست داشتن در دنیا هست لغوی ها در و خصوصا مفسرین در تفسیر قرآن اینطوری تعبیر میکنن خصوصا اینکه خود تعبیر قرآن این چینینه از خود کلمه ولا به معنای دوست داشتن حالا میاد معانی شما چند تا آیه کنار هم دیگه میذاریم تا این, ق... این کلمه ولا مشخص بشه این ولا و موالات یه کلمه دیگه داریم که سیغه مبالغه از ولا هست از موالات هست اونم تولی هست که همراه دوست داشتن نصرت دادن مشرک هست بر مسلمانان و بر اسلام تولی بس ما تذلي دارين مو مولود دارين أصلك لم يذلو دار القرآن مثلا بلوان المثال دارين دار فرمودي القضبان بمعنى محبة دوستاشتان يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن اتسحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولاك هم الظالمون قل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وأشيراتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم أحب إليكم إنجمات أو قبلش أولياء وإخوانكم أو إخوانكم أولياء نسحب الكفرة تو أخر تو ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربطوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين إن جوا فلا بتمعنومات فلا بمعنى محبت ما حق نداریم که یک مشرک دوست داشته باشیم دوست داشتن اونها دوست داشتن اونها افتخار کردن به اونها تعظیم کردن به اونها گناه کبیره است. تعظیم کردن اونها دوست داشتن اینجا آیه سریح است. پدر برادر فرزن همسران اینا را نباید دوست داشته باشیم اگر اونها را بردوست داشتن برتر نسیم از الله و رسولش بدانیم که ما ظالمیم و فاسقیم خیلی از مسلمان ها ازشون این اشتباه روخ میده یک اشتباهاتی روخ میده در حد گناه کبیره و اشتباهات دیگه در حد کوف میرسه مثلا به عنوان مثال افتخار کردن به اسم یک بازیکن غربی کافر اون اسمی که مثلا بالفرد پشت لباس ها نوشته میشه از اون بازیکنه نصرانی یا یهودی یا هر دیانتی که هست ما نباید اونها رو دوست داشته باشیم نباید به اونها اختخار بکنیم نباید به اونها تعظیم بکنیم این اشتباهه گناه هست بعضی جاها نه اینکه گناه تبیره هست بلکه خودش یه نوع شرکه شرک اکبره مثلا پوشیدن طلیب پوشیدن صلیب بعضی هستن یا همون علامت زرتوش دیدید بعضی از شاهین تو گردنشون آویزی یا پشت ماشینشون زدن؟ مشکل کی اکبر؟ این تعظیم بوت دیگه نه تعظیم اهل شرک نه محبت اهل شرک بحث تعظیم شرکه اون بوتی که بیش استغاصه میشه اون سلیب سهاته بش میشه کمک ازش میتلبن امام حنیفه رحمه الله میگيات پوشیدن صلیب یا چی میخواد به عنوان یک باشه چی میخواد روی پیراهم باشه دیگه یه نو شرک اتبره این مباحث اینجا جایش جاش نیست که اینجا ما بحثش باز بکنیم از اسباب این که ما بدونیم این ولا و برای چیه موالاتمون برای الله باشه و لازمه این ولایت این دوست داشتن خداوند عدم دوست داشتن مشرکه و اهل شرکه حد اقلش گناه کبیره هست حد اقلش گناه کبیره هست تا جایی که این آیه که اینجا معلّف بهش استناد میکنه مثلا لا تجد قومن يؤمنون بالله والیوم الآخر يوادون من حد الله و رسوله لا تجد قومن نمیبینی قومی که مؤمن باشن به الله و روز آخرت يوادون اینجا ولایت به به چه معنی اومد؟ مبدت اونجا محبت اینجا مبدت اونس گرفتن خوب گرفتن و شاید کلمه مبدت بلاتر از کلمه محبت باشه چون همراه محبت اون گرفتن هم هست یواجون من حد الله و رسوله نه بینی مؤمن که از الله میترسه و از روز قیمت روز روز میترسه ترسه اون کسی که دشمن خدا هست دوستش داشته باشه ولو کانو آباهم او ابناهم الله میخواد پدرانشون باشن یا فرزندانشون باشن او اخوانهم او عشیرتهم لازمه ایمانه لازمه محبت الله لازمه مبدت لازمه ولایت الله اینه که ما براءت بجویم از اهل و مشکین و شرکش الله آیاتی که در قرآن اومده که خداوند بهمون دستور داده بر اینکه ولایت باید خاص خودش باشه زیاده این ولایات دوست داشتن مطلقمون و دوست داریم یک شخصی را خاطر الله واسه زیاد مثل فرموده خداوند انما وليكم الله ورسوله والذین آمنوا ولی شما اونایی که واسه خداست پیغمبرشین والذین آمنوا الذين يقيمون الصلاه وایتون الزکات وهم راکعون ومن يتولى الله ورسوله والذین آمنوا فإن حزب الله هم حزب خداوند در این صورت غالب میشه وقتی که حبت الله شد وقتی که انسان حاضر شد به خاطر الله گذشت بکنه از برادر مؤمنش به خاطر ایمان با هم دیگه جمع بشن اون ایمانی که به خاطر الله داره، این ایمانه مؤمنی را دوست داره اگر بغدشون هم داره بغدشون به اندازه گناهشون داره پس اینها محبتی که گناه کبیره هست اگر صرف بشه این محبت به مشرکین و شرکشون <تصفيق> چون در تضاد ده با محبت الله واقع میشه اما اگر همراه این محبت و این مبدت و این موالات تولی اومد نصرت اومد تعیید اومد اینجا دیگه شرک اکبر اگر تولی اومد و من یتولهم منکم فهو منهم كثير تبع کرد كان نصرت داد اونها بر عليه اسلام این شخص از خود اونهاست کسی حاضر من بلتعد که فرموده خداوند در شأنش نازل میشه یا ايها الذين امنوا لا تتخذوا تتخذ و وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالموده اياتي كده سریه ممتحنه است اي كسان ایمان مؤمن و بدينا كن گفتم یک آیه نیست یعنی ده آیه در در مورد علا ورا هست حب في الله و بغض الله هس. حاتم بن متا که استشفتو میدونید حاتم بن وقتی که رسول الله عليه الله علیه خاص که هجوم, هجوم بکنه به کفار قریش به مکه اجازه نداد کسی از مدینه بیرون بره کنترل کرد کسی تجسس نکنه کسی خبر به مشرکین نبره حاتم بن متا به خاطر اینکه خاندان خودش رو نجات بده مال و دار و رو حفظ بکنه نامه این نوشت به کفار کرهش که رسول الله علیه و سلم میخواد به شما حمله بر بشه. اینجا چیه نصرت دادن مشکین بر اسلام. حکم نصرت دادن مشکین بر, بر مسلمان ها چیه؟ حکم نصرت دادن مشکین بر عليه مسلمان و اسلام کفر اکبره. رسول الله صلی علیه و سلم قطعا بشپشت میکنیم این قسم ابلاغ میشه بر رسول الله صلی علیه و سلم که حاضر این چنین کاری کرده. اون زن و میارن اون نامه رو ایرون میارن از دستش میگیرن حاسب رو رسول الله صدا میزنه عمر امن میگه رسول دعنی از رو بعنقه بذار گردنش رو رسول الله علیه و سلم میفرماید بذار ایک تحاسب بیاد حرفشو رو حاسب این این بلتره میاد میگه یه رسول الله من از باب ردت از این کار انجام ندادم یعنی من این کاری که انجام ندادم بغض اسلام و نبوده هدفم چی بوده حاطر میگوید؟ میگوید خواستم دستی داشته باشم نزد مشرکین که بتونم خاندان خودم، خانواده خودم و مانو دارو ندارم اونجا حفظ بکنم همه شما اقوام داشتید، کسو کار داشتید من کسو کار اونجا نداشتم که بتونم خانواده خودم اونجا حفظ بکنم رسول الله صلی اللہ علیه وسلم اینجا حاطبین بلتر رحام میکنه المرور الخطاب يقول يا رسول الله إنه منافق فهنا يقدرونه للقفة المرور الخطاب يقول يا رسول جدهاته منافقه نفاق أكبره كإنسان بيات مشركين رون مطرح بدأ إمام شافين حرف أولوي مزنه يقول فعل حسيم ببعثه قرائنش اگر ما بقم قرائن نقابو كنين اگر بقد هاي هج حواشي نقابو كنين إنجاب واضح سريحة دار مشركين رب فيروزين مدبر عليه السلام این فعلا قبیحی به امام شافی رحمه الله می بیاد و احتمال داره قبیح سرم اینم در بر داشته باشه ولیکن شاید حاسب یک عذر موجهی داشته باشه یک عذر موجهی داشته باشه اون عذر حاسب چی بود؟ عذرش خانواده بود گفت که خواستم این ازباب ردت انجام ندانم خواستم خانواده خودم را حفظ بکنم رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرماید؟ میگه یا عمر وما ادراك الا الله صلى على قلوب اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفر الله لكم او كما قال عليه الصلاه والسلام از کجا ميديني که خداوند گفته اهل بدر هر گناهی خواستید انجام بدید خداوند میگه گناهان اهل بدر خب را بخشیده خب اینجا علما چی میگن میگن که اگر اینجا عمل حاطه نبات کفر اکبر بود قابل بخشش نبود چرا ان الله لا يقصر ان يشرك به ويقصر من دون ذلك لما اجا الشرك اكبر رخيچ و خداو ند میبخشه اگر اینجا ولای مشرکین درش بود یا تولی مشرکین بگیم چون نه ولا بعد تولی هست اگر تولی بود نه ولا اگر تولی بود درش اینجا هیچ وقت قابل بخشش نبود ان الله لا يقصر ان يشرك به ولی چون خداوند او را بخشید و ما درک لعل الله اطلع على قلوب اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفر الله لكم ودهج گناه شرکت برا نمیرخش چون اینجا خدا و اونا بخشید پس اینجا گناهی که انجام داده شرک اکبر نبوده شرک اصغر بوده گناه کبیره ای بوده گناه کبیرش چی بود اینه که به خاطر دنیا خواست خانواده خودش رو نجات بده بحث دنیوی بود ردت از دین نبود اینجا, اینجا هست که امام شافعی رحم الله میگه اینجا عبرت به مقصد فاعله یعنی ما باید در اون عمل شرکی که ما میبینین شاید شرکی اکبر باشه به ظاهرش قرائنم دلالت بده که شرک اکبره ظاهر فعل حاتمی بسعی شرک اکبره چون نصرت داده از رو بر اپلام ولیکن شاید یه قصد غیر از اون قصد شرکی داشته باشه شاید قصد دیگری داشته باشه اینجا میبید هر وقت دو دوتا احتمال اومد احتمال میره روح روی اون ادعای خود فاعل اون کسی که اون کار رو انجام داده ما دیگه به قرائن نگاه نمی کنیم قرائن بر این میدن ولی که ما به قرائن نگاه نمی کنیم به صاحب دعوا نگاه می کنیم که اون هدف از اون کارش چی بوده حالا شاید یه شخص شاید دروغ میگه شاید به خودش بهانه میاره ما کاری نداریم همونطوری که رسول الله صلی الله علیه و وقتی که از جنگ تبوک اومدن منافقین می اومدن میکردن خودش رو ما و وظیفمون به ظاهر حکم به باطن نیست هر چنکی اینجا چرا رسول الله صلی الله علیه و سلم چرا رسول الله به خط ظاهر شک نکرد چون اینجا بحث فعله اجرای حد بر یک شب که آیا مرتد شده یا نشده آیا جاسود هست یا نیست قصد تجسس بر علیه مسلمانا بوده نبوده اینجا هست که رسول الله علیه و سلم تأمین میکنه سب میکنه حوصله به خرد میده تا اینکه قصد فاعل را ببینه ما همیشه در بحث تکفیر میگیم ما باید یکی از شروط تکفیر این داریم که به قصد فاعل نگاه بکنیم یا ای الذین آمن لا تقولوا رائنا و انظرنا رائنا چرا شو رائنا فوش به رسول الله صلی و بود یهود این چیز میدادن با این کلمه رائنا مسخره می‌کردن و استهزا و فوش می‌دادن ولی ولی صحابه این حرفو می‌زدن منظورشون چی بود अरे انفسام به حرفم گوش بده یعنی ولی مؤمنین ازش نه شدن نمیتونیم چون نمیتونیم برای یک شخص مؤمنی، اگر این لبزی به کار برد بگیم تو مشرکی چون این مشرکی یهود از باب فش یا استهزام و مستره به رسول صلی علیه استفاده می کنن عبرت به اون کسی که اون فعل را انجام داده به چه کسی انجام داده مثلا بالفرد مثال مثال می زنم بهتون فقط بخاطر این خضیه روشن بشه اون شخصی که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایان که از شدت خوشحالی وقتی که وقتی بود زیر سایه درختی تو رو گذاشته بود روی شتور شتور رو می‌بنده بعد از خواب بیدار رو نمی نمی‌بینه از شدت خوشحالی وقتی که رو پیدا می‌کنه بعد از اینکه دنبالش می‌گرده چی میگه اللهم انت عبدی و انا ربك تو بنده منی و من پروردگارت از شدت خوشحالی اکثر من شدت الفرح یک شخصی اگر اینجوری چنین... حرف ناسزایی حرف ناشایستی ازش ترزد ما باید نگاه بکنید آیا قصدش داشت یا نداشت آیا میدونست که این حرفش کفره یا نه آیا عاجز بود نبود ما موانع تکفیر چه اتا داریم خیلی مهمه که هر طالب علمی باید خفز باشه این موانع تکفیر ما در کفرانس تکفیر این مباحث و مفصل گفتیم فقط اینجا از بابه اینکه بحث بحث بحث ای این که رب داره به بحث آیات در بحث بلا برام هست و باید تفسیر بشه از این بحث این بحثو بارز بحث اکراه بحث عاجز جهل و اشتباه این چهار تا مانع نجاشی نمیتونه اعلان اسلامش بکنه رسول الله صلی الله علیه و صلی وقتی که فوت میشه نجاشی اعلان میکنه که نجاشی فوت شده کسی نیست برش نماز بکنه بلامچی نماز رو بکنید فإِن أَخَلَّتُم قَدْ تُوُفّی برادر شما فوت شده با وجود که اعلام اسلامش نکرده بود صحابه نمی‌دونهنستن اونجا که در حبشه بودن بحث عادت میاد اینجا عادت بحث اکراه میاد مثل عمات که کلمه کفر گفت اکراه شده بود بحث جهل میاد مثل معاذ نه بحث کسجله می کنه بر رسول الله علیه و صل و و بحث اشتباه میاد مثل اون شخصی که شدت خوشحالی گفت پروردگارم پروردگارت منم و تو بنده ی به خدا گفت ما باید به قصد فاعل کفر نگاه بکنیم که آیا قصد فاعل کفر داشته یا نست قضیحات میبرد این قضیه خیلی روشنه قصدش نصرت دادن مشرکین بر اسلام نبود پیروزی دادن اونها بر علیه اسلام نبود پس غلطه بحث امروزیمون بعد از این که دونستیم ما باید خداوند را بپرسیم خدا را بشناسیم بعد خدا را بپرسیم. و فقط او را باید صدا بزنیم و فقط او را باید بترسیم این قسمت سوم باید براءت بجویم بعد از اینکه دونستیم که باید خدا پرستیده بشه باید بدونیم که ما باید متبری بشیم دوری بجویم از مشرکین نه اونها را دوست داشته باشیم اگر دوست داشته باشیم بخواین پدر مادر ما هم باشند اونجا هست که چی میشه اونجا هست که گناه کبیره مرتکب شدیم نه اونها را دوست داشته باشیم نه اونها رو نقد دار... بدیم بر علیه اسلام حالا میmene سوال حکم تعامل با مشرکین چیه آیا درست با آنها تعامل بکنیم آیا لازمه تعامل خرید و فروش آیا درست اصلا هدیه بدیم به مشرک یا نه این ها پیش میاد آیا لازمش اینجا اگر من هدیه دادم به مشرک یا به یهودی آیا لازمش اینه که من ولائرا ندارم خیر رسول الله صلی الله علیه و سلم فوت میشن یهودی که دشمن رسول الله صلی الله علیه و سلم بودن رسول الله پول قرض گرفته بود و درعش سپرش رو رنگو داشته بود نزد یهودی رسول الله صلی الله علیه و سلم به زیارت مریضان یهود میرفت رسول الله صلی الله علیه و سلم یهود میفرستاد با وجود که دشمنی یهود با اسلام واضح و صریح بوده اسلام تعامل با اونها با مشرکینو من نکرده و این استجارک احد من المشرکین فاجره اگر اومد پناه پناه هم از دو خواست پناهش بده تا اینکه کلام خدا را بشنگه درست ما براعت داریم ما براعت می جویم از مشرکیم و اهل شرک دوتشون نداریم بلکه بغضشون داریم با خاطر الله چون الله را دوست ندارن چون الله را دوست ندارن وظیفه مونه که با اونها بجنگیم حتی اگر پدران من باشن وظیفه مونه چون ما الله را دوست داریم چون دوست نداریم کسی به الله توحیم بکنه چون دوست نداریم کسی به الله من ناسزا بگه شریک برای الله من بده ما دوست نداریم و بغض اون طرف رو داریم و لازمه این دوست داشتن خداوند و بغض اون کسانی که خلاف این رو انجام میدن اینه که با آنها بجنگیم اگر مشرکن اگر یهودن بعضی از مسلمان ها متاسفانه از کتاب و که دچار شکست نفسی شدن روحیه اسلامیشون خورد شده اصطلاح عربیش هزیمه نفتی هست الحضیمه نفتی هست دوچار نفتی شده. یعنی شکست روانی اسلامی شدن از لحاظ روانی کم اووردن از لحاظ روحی کم نه میتونن از اسلام به خودشون دفاع بکنن میان میگن که بله اسلام که دین مبارزه نبوده که برد بجنگه تا اینکه که شرق رو از من ببره یا مشکی رو بکشه تا این که کلمه خدا کلمه الله بالا بیاد نه مسلمان ها از خودشون دفاع کردند رسول الله اومده فقط از خویش دفاع کرده در مدینه مشرکین اومدن حمله ور خیر و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه بجنگید تا فتنه نشه تا شرک نشه بجنگید وظیفه ما است که بجنگیم تا شرک نشه وظیفمون هست. وظیفمون است با شرک بجنگید وظیفمون هست با گناه بجنگیم. با اون معصیت بجنگید بگیم نهي ناه ناهي من كربكنى وأمر معروف وكنى إيم بذي تيمو مسلمونات دين نصيحة أصلا الدين النصيحة قالوا هالو لمن يا رسول الله قال لله ولرسوله ولكتابه ولأمة المسلمين وعمته إن دينه دينه كدرش نصيحة نواشاة إن دين بدرزم يخرج مث دين يهود مث قوم السباعي خذنا بده شو كار شو لنا بده رجال كانوا لا يتناهون عن منكر فعله نهی از منکراتو خودشون نمی کردن امتی که امر معروف منهی از منکر نباشه این امت دیگه ولعبران نسبت به خدا نداره این دوچار شکست روانی شده نسبت به اسلامش دیگه اسلامش افتخارافرین نیش براش, براش. داره به نحوی شکست نفسی میکنه به نحوی میاد به داره هم به زلت در میده این زلتی ما اسلام عزتیمون داده با اون اللهی که در قلب ما هست با اون دینی که به همون داده با اون پیانبری که به همون فرستاده و بدونی اگر ونا و برایتون لله شد بدونی که همون تک در ختام همون بحث آیه بلا و برایتون میگوید خداوند بند فا حزب الله همون غالبون بدونید حزب الله غالبان، چه در دنیا چه در آخرت اگر جمب همونطور که رسول الله صلی الله علیه و آله ولی متأسفانه ما ها وقتی که حب من فی نشد بغض من نشد خراب شد که ما اینطوری الان این امت که الان به نحوی تن به ذلت در داله اینطوری باشیم. این بلاها بر سر امه اسلام در بیا ولی اگر امر معروف باشه دعوت باشه درش نصیحت باشه هیچ وقت این امت حال روزی اینطوری نمیشه حتی که بحث ادامه داره بیش از این مطلب هست در بحث ولاورا من خیلی بار گفتم خیلی بار در بحث ولاورا بحث ولاورا بیشتر از اینه فقط این مطلب رو بدونید که ما به عنوان یک مؤمنی که گفتیم الله را به عنوان معبود تجریفتیم به عنوان پرده و پروردگار تجریفتیم همونطور که صحابه ایستادن و جهاد کردن این جهاده تا خون در تن ما هست باید بجنگیم نمیگم که الان شمشیر به بگیرید برید به عنوان جهاد نمیدونم بگید که من می‌خوام نرم جهاد بکنم خیر بحث این نیست بحث اینه که امر بر از منکر بشه و جهادم به موقع خودش میاد ولی ما باید آمادگیش داشته باشید اول ایمانمون رو پخته بکنیم بسازیم حب الله رو قریبر قلبمون کنی بسازیم تا اینکه خداوند یک روز بیاد ما رو نصرت بده و دین خودشو پیروز کنه واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و محمد